با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش در اتاق گرم و مطبوعی که پرده های کلفت و خوش رنگ آن را از دنیای خارج جدا کرده بود راه میرفت. بیرون سرد بود و برف می بوران قوقایی را انداخته بود اما پرده ها و در و پیکر محکم نمیگذاشت که سرما به درون اتاق نفوذ کند. اصلا این اتاق، تنها این اتاق که فقط دخترش حق ورود به را داشت، یک تا جای امنی بود که در زندگی برای او باقی مانده بود. هیچ جا راحتی نداشت. همه جا دیگران با نظر بغض و کینه به او نگاه می کردند. از او بدشان می آمد. حتی کسانی که با آنها کمک کرده بود. کسانی که تملقشان را گفته بود. کسانی که باعث ترقی و ازدیاد انوالشان شده بود. آنها هم از دیدارش نفرت داشتند. سایر و اتاقها مال کس و کار او بود. حاجی و ننه بگم حق داشتن همه جا بیایند و بروند. در اتاق پذیرایی دوستان و همکاران را میپذیرفت. دوستانی که از ریخت زشت او تنفر داشتند با آنها میخندید و صحبت میکرد دروغ میگفت و دروغ میشنید آنها سبزی او را پاک میکردند و او خوش زیردستان زیر دستان و ارباب رجو را تحمل میکرد اما در این اتاق تنها با دخترش مینشست اینجا با دخترش یک رنگ بود آه، عمری خیال میکرد با خودش هم صاف و صادق است با دخترش گفتگو میکرد با هم درد دل میکردند اینجا قیافه انسانی او قیافه حقیقی او قیافه که نقاب تملق و دروغ بیروهش نساخته بود جلبه‌گر میشد. وضع اساسی اتاق مرتب و با سلیقه بود معلوم بود که سلیقه دختر جوانی در تنظیم آن دخالت داشته است قاضی روی صندلی گرد چرمی کنار میز می نشست. و یک صندلی راحتی هم کنار میز تحریر مخصوص دخترش بود. گاهی او کار خودش را میکرد و شیرین کتاب میخواند. گاهی او روی تخت راحت دراز میکشید و پاهایش را دم بخاری دیواری میگذاشت که گرم باشد. از کنده های نیم نیمسوز شعله زرد و آبی برمیخواست و صدای چرق و ترق هیزم خشک سکوت را می شکست. دیوان وار در اتاق راه می گویی عقب چیز گم کرده می گشت. در این اتاق آینه نبود. اصلا در خانه او آینه کم وجود داشت. فقط برای دخترش آینه تمام قد خریده بود. هرگز به آن اتاق پا نمی گذاشت. نمی خواست قیافه خودش را در آینه ببیند. فقط برای صورت تراشی آینه مقعری که موهای ریش را به اندازه یک سر قلم آهنی بزرگ می کرد مورد استفادهش بود. و در آن هرگز سعی نمیکرد تمام صورتش را ببیند. هرگز به دکان سلمانی نمی رفت. از آینه بزرگ سلمانی وحشت داشت. هر هفته روز جمعه، صبح، کاشیپور پور می را سرش را اصلاح می کرد. تمام اخبار هفته را که در روزنامه نبود و از مشتریان خودش شنیده بود، حکایت می کرد. پولش را می گرفت و دم در از قاضی خدافزی می کرد و می رفت. اما امشب احتیاج داشت قیافه خودش را ببیند امروز بعد از هفده هجده سال بعد از یک عمر باز هم دردی که در تمام جوانی او را شکنجه میداد سینهاش را فشرد دلش را چلاند بعد از هفده سال آنچه فراموش شده بود آنچه میخواست از یادش برود آنچه روح او را شکنجه میداد آنچه باعث بدبختیش شده بود آنچه زندگی او را مسموم کرده بود باز پیدا شد پس از هفده سال بار دیگر متوجه شد که زشت است آمده بود به خانه قیافش را ببیند درک کرده بود حس می کرد که زشت است و از سابق هم زشتتر است مصمم شد که آینهی به دست آورد نزدیک درک رفت قرش باد به وحشتش انداخت. ترسید. از سرما. از تنهایی. از بدبختی ترسید. اما به خود جرأت داد. با دو دستش صورتش را پوشاند و به اتاق دخترش رفت. نمیخواست خودش را در آینه ببیند. جرأت آن را نداشت. دست چپش را روی چشمهایش گذاشته آینه کوچکی که روی میز آرایش بود. برداشت و به دو به اتاق خودش آمد. و آنجا آینه را روی میز گذاشت. رقص شعله های آتش بخاری یک دست شعاب آینه انداخت و آن وقت بالای بخاری قرص روشنی پدیدار شد و پس از یک چشم هم زدن ناپدید گشت. با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش قدم میزد. از زوزه طوفان و صدای شکستن شاخه هایی که زیر فشار یخ و برف نقش زمین می شد می ترسید. از چرخ چرخ بخاری می ترسید. از قرص روشن روی دیوار میترسید میترسید که دستش را رو از روی صورتش بردارد میترسید نه برای این که نفرت داشت از اینکه صورتش را در آینه ببیند و از چشمهای ریز و دماغ کوفته و لبهای گرد و بیتن و و چانه پخ و سالکی که نصف صورتش را برده بود زشتی خودش را احساس کند نه این را میدانست. و یقین هم داشت که پس از 17 سال که به بدگلی خودش خوب گرفته بود پیری همکار خودش را کرده است وحشتش بیشتر از این بود که در آینه گذشته خودش را ببیند آرامش خاطر او از روزی بود که متوجه شد عشق و دلبستگی او به دخترش معنی و هدفی در زندگی برایش فراهم ساخته و وقتی برای اولین بار فهمید که فقط یک موجود در دنیا هست که از قیافه زشت او در عذاب نیست برعکس او را حتی دوست هم دارد آن وقت گذشته خودش را ماننده کتاب پیش پا افتاده ای که افکار کهنه و حالات مبتذلی را نقد کرده باشد بست به گذشته خودش خاتمه داد و در نظرش آینده ای که در آینده درخشان دخترش مقروغ بود جلوگر شد برای نخستین بار که دختر سه ساله دستهای ملوس سفیدش را به گردن پدر انداخت و لبهای نو و دست نخورده را روی لبهای گرد و چروکیده پدر چسباند و گردن پدرش را فشار داد و گفت آقا چون دوست دارم دیگر برایش زشتی وجود نداشت. در خیابان ها زنها از او رو برگردانند و بچه ها او را به مادرانشان نشان دهند. هند. در دادگستری ذکر اسم قاضی بیریخت وسیله شوخی و خوشمزگی باشد. باگذار در مجامع کسی رقبت نکند با او حرف بزند. باگذار در دادگاه متهمین با مداد صورت او را بکشند. باگذار حتی قزات پیرمرد در مجالس مشاوره در ضمن بحث در امور قضایی به سیبیل بدترکیب او بخندند. چه اهمیت داشت وقتی دخترش دختر کوچولو ملوسش شیرین نازنین او را دوست داشت چه باک. تلفظ کلمه شیرین حتی در عالم خیال او را متشنش کرد. حس کرد که چیزی سینه‌اش را میفشارد. گویی با دسته هاون قلبش را میکوبند. نفس عمیقی کشید، اما نه. این درد از آن دردهای معمولی نبود. رنگش پرید، عرق سرد روی پیشانیش نشست. خودش را روی صندلی راحت انداخت. دستش را روی چشمانش گذاشت و تمام بدنش را رو به بالا کشید. سرش رو به عقب خم کرد سعی می کرد با کشش ازولاد از فشاری که به سینهش وارد می آید بکاعد. اما فایده نکرد باز هم در هم فرو رفت روی میز تحریر کنار چراغ رومیزی آینه برق میزد. با دستهایش عرق سردی را که روی پیشانیش نشسته بود پاک کرد با وجود این درد جسمی از عذاب روحی او کاسته آرامش کرده بود نگاهی به پنجره انداخت پردههای زخیم و سنگین از نفوظ سرما جلوگیری می کرد. میخواست بدوند در سینه دوایش همه چیز هست. قرار بود که حاجی، نوکرش، آمپول نیترید دامیل بخرد. رفت کنار پنجره، سینه دوا آنجا بود. بینیاش را به شیشه سر و از سرمایه خشک و تهدید کننده لثست برد. دو مرتبه برگشت و کاغذی را که در جیبش مچاله کرده بود درآورد. به آن نگاهی کرد و روی صندلی گرد کنار میز تحریر نشست. دخترش او را گذاشت و رفته بود. نمیخواست با او زندگی کند. معلوم نیست که دخترش هنوز هم او را دوست نداشته باشد. نامه ها نامه هایی که در این دو سال اخیر آرامش او را برهم زده بود. عطایش را در نگاهی به آنها کرد و با کف دستش شغیقه هایش را فشار داد. مثل کسی که بخواهد هندوانه خوب را از بعد تشخیص بدهد، آرنج هایش را رو روی میز تکیه داد و خیره به آینه نگریست. قیافه یک کریه و چینهای صورتش را که مدت ندیده بود، تماشا کرد. اما واقعا زش بود؟ نفهمید چرا، اما به محض اینکه این فکر به خاطرش رسید، چندشش شد. هم درد بهش دست داد، سینهش را پیشکشید کشید که امیختر نفس بکشد، نگاهش به نامه هایی که روی میزش مرتباً باشته شده بود افتاد. همین نامه ها آرامش او را در این دو سال اخیر برهم زده بود. کاش معلوم میشد که کی آنها را نوشته است. نکته دیگری برایش اهمیت پیدا کرد. تا به حال با کین توزی و خشم درباره مزامین این نامه ها می با خشونت ناگفتنی میخواست نویسنده نامه ها را پیدا کند. گاهی فکر می کرد که اگر نویسنده گمنام گم نام نام ها پیدا شود. با او چه معامله کند برای او حبس بریدن دیگران را از زندگی محروم کردن چیزی نبود اینجا کار و زندگی او بود آتش کینه را خاموش نمی دردهای او را تسکین نمیداد. چه کند با کسی که داشت او را بدبخت می کرد با کسی که او را بدبخت کرده بود لبانش را میگزید و میخواست با دندان تکه های تن نویسنده گمنام را پاره پاره کند تا اقلا حساب مصیبتی را که به او وارد آورده پاک کند این نامه ها بود که داشت و مرتبه او را زشت کرد هیچ پرده بین او و دخترش نبود دخترش حق داشت همه نامه هایی را که برای او می آمد بخواند حق داشت در کلیه کارهای خانگی او دخالت داشته باشد در اموال او تصرف کند مگر دخترش را او با نیاورده بود از سه سالگی بی مادر شد از پنج سالگی شیرین بزرگتر خانه بود و ننه بگم دستورهای او را انجام میداد مگر به او حق نداده بود که در خانه هرچه می میخواهد بکند با پولی که در اختیارش بود هر چه میخواهد بخرد از شانزده سالگی که دبیرستان را تمام کرد به او حق داد که هر جا میخواهد برود با هر کسی که میخواهد معاشرت کند از هر کسی که میخواهد در خانه پذیرایی کند به همه ی کارهای او برسد او یقین داشت شیرین دختری به این ملوسی دختری که بیریختی مثل او را دوست داشت، او را ننگین نخواهد کرد. شیرین در خانه همه کاره بود. دو سال پیش نخست نامه آمد. قاضیان را نگه داشت و میخواست آن را به دخترش ندهد بخواند. اما شب بعدمان صرف شد. دخترش را صدا کرد و نامه را به او داد که بخواند و قضاوت کند. نمیخواست که بین آنها سری وجود داشته باشد. بالاخره هر طوری بود، دخترش نامه ها را بخواند. خودش به او حق داده بود ممکن بود که نامه اول را از او پنهان کند اما نمیتوانست او را از خواندن نامه ها باز دارد اصلا روزی که نامه نخواستی رسید باور نمی کرد که باز هم ادامه خواهد داشت چه اهمیتی او به این نامه میداد؟ می داد که برای او اهمیت داشت همین بود هیچ باور نمی کرد که مزمون نامه ها در روح دخترش تأثیر خواهد کرد وقتی متوجه این حقیقت شد، برکین توزی و خشم او از نویسنده گمنام نامه ها از کسی که داشت پایه خوشبختی و آسایش و آرامش خاطر او را متزلزل می کرد از جنایت کاری که روی هوا و هوس حیات او و دخترش را به بازی گرفته بود افزوده میشد ولی هیچ به فکرش نمی آمد که تاثیر این نامه ها به حدی که ممکن است دخترش را از او برنجاند تا آنجا که تنها موجودی که از دیدار او نفرت ندارد بیزاری احساس کند و عاقبت روزی خانه اش را ترک کند و پیرمرد مرد پا به گور را تنها و بیکس از باگذارد و برود. مطالب نامه ها چه اثری می توانست در فکر و عمل خود او داشته باشد. او جواب آنچه کرده بود می توانست پس بدهد. اگر روزی قرار بود که حساب پس داده شود از محاسبه باکی نداشت. آنچه کرده بود در مقابل بلایی که به سرش آورده بودن هیچ بود. آیا او بیشتر زهر زندگی را چشیده بود یا تمام آن کسانی که بنابرای ادعای نویسنده گمنام نامه ها او بدبختشان کرده به زندان افکنده یا نابودشان ساخته بود. یک روز خوش در زندگی نچشیده بود. وقتی بچه بود و به مدرسه می رفت بچه های دیگر از دیدار او بیزار بودند. او را به بازی نمی گرفتند. در کلاس هیچ شاگردی رقبت نمی کرد پهلوی او بنشیند. جای پهلوی او همیشه خالی بود. معلم هم با اک را از او درس میپرسید. اغلب نمره های بد میگرفت چقدر زش کشید تا توانست وارد مدرسه سیاسی بشود و دیپلمی بگیرد. فقط برای اینکه لبهای او گرد و بر قلوم بیده بود بچه ها اسمش را گذاشته بودن لب قچه وقتی بزرگ شد کسی نمیخواستنش بشود. آخ بیاین حساب کن. او جوابشان را حاضر داشت نه نامه ها نمی توانست در خود او اثری داشته باشد اما دخترش را ازش گرفتند وقتی باز پرس خصوصی به او گفت که شهربانی نزدیک است، نویسنده این نامه ها را پیدا کند از خوشحالی در پوز نمی گنجید. دلش می خواست در محکمه متهم را ببیند در عوض شیرین او را دم مرگ بیکس و مونس گذاشت حالا کی چک و چانه او را ببندد؟ با هر دو دستش محکم شقیقه هایش را گرفته، خیر خود را در آینه می نگریست. خطی که از پشت پره راست بینی لبانش را دور میزد و به چانه منتهی می شد، لبهای او را بیریختر می ساخت. همین را می خواست بداند که آیا دخترش هم این سشتی او را احساس می یا نه؟ وقتی در دادگاه نامه شیرین را به او دادند، همین دردی که داشت او را زمین کوب می کرد چشید. از همین جهت نامه ها از نظر تازهی برای او جالب بود میخواست بداند که مضمون نامه ها چه بوده که در وجود او مانند آب روی پرهای مرغابی بینفوز بوده ولی دخترش را تا این حد پراشفته است میخواست بداند که آیا از مزامین نامه ها از متن و طرز جماوری مطالب تنفر و انزجار احساس میشد یا نه این نکته برای او لازم بود این نکته بسیار اهمیت داشت چه شده بود که دخترش نمیخواست با او دیگر در زیر یک بام زندگی کند آیا شیرین هم از زشتی او در عذاب بود؟ دلش میخواست عشق بریزد با چه تمسخوری در محکمه به متهمینی که عشق میریختن مینگریست حالا میفهمید که چقدر آدم راحت میشود کاش میتوانست چشمانش را تر کند آیا اشتباه نکرده بود؟ آیا زندگی حتی زندگی خوشبخت دخترش به این زجرها نمیارزید خوب یادش هست دو سال و چندی پیش وقتی نخستین نامه آمد و در حضور دخترش آن را خواند شیرین پرسید آقا جون چرا اوقاتتون ترخ شده؟ و اون نامه را به دخترش داد خوب یادش هست درباره زغال فروش بود زغال فروش چه مقامی میتوانست در زندگی پرزجر و متلاتم او داشته باشد؟ از این اشباه صدها در تاریخ گذشته او وجود داشت. این هیت های بیشکل لغزنده یک بار در محکمه؟ در زمن بازپرسی، در مذاکره با مافوق، دمه در زندان، در خانه، موقعی بند و بس، هنگام اخز حقوق و اضافه حقوق، زمانی تک تک، گاهی دست جمعی می آمدند و میرفتند اما او اصلا لازم نمی دانست. مفید تلقی نمی کرد. فرصت نداشت ماهیت آنها را درک کند. برای او وجود خارجی نداشتند. تمامشان فقط وسیلهی بودند برای ترفیه رتبه. تازه خود ترفی و اضافه حقوق چه بود؟ هیچ. همه اینها محکمه، بازپرس ادعا نامه، قرار و مدار، معامله، رشوه، فشار، جاه و مقام همه اینها برای خاطر دخترش بود. برای خاطر تنها موجودی که زشتی او را نمیدید. آن وقت نویسنده لعنتی با این نامه میکوشید آرامش او را برهم زند میخواست این اشبا را در خاطر او دو مرتبه زنده کند میخواست برای آنها برای زغال فروش و امثال آنها شکل ثابتی و سازد. حادثه کوچکی که هیچ وقت شایسته ندانسته بود درباره آن دقیقه‌ای ای فکر کند حالا او را گرفتار کرده بود وقتی این ها رسید و شیرین آن را خواند و اشک از چشمانش سرازیر شد شاید برای نخستین بار احساس کرد که دخترش از او بیزار شده است. نه نه. برای نخستین بار این حس بهش دست داد که مبادا دخترش به واقعیت زشتی او پی برده و این عشق ها فقط برای پوشاندن تأثری است که از داشتن چنین پدر بیریختی و از زندگی با چنین مرد بدترکیبی به او دست داده. والا چطور میشد حادثه‌ای که به کلی از یادش رفته بود و یک امر بسیار عادی قضایی و اداری بود، دخترش را شیرین مهربانش را آنقدر تحت تاثیر گرفته باشد. از سر میز بلند شد. به طرف بخاری دیواری رفت. با انبور آتش را زیر و رو کرد. دو هیزم دیگر در بخاری گذاشت. چند قدمی در اتاق راه رفت. هوای خروشان و سرد بیرون او را لحظه وادار به توقف کرد. کنار در رفت. لایان را باز کرد. نفس عمیقی کشید سینی دووار وارسی کرد و دو مرتبه پشت میز نشست. شقیقه هایش را در دست گرفت. محکم فشار داد و گاهی به آینه و زمانی به نامه نگری است. هنوز هم آنچه در این نامه درباره زغال فروش ته میدان پاقاپغ پاق نوشته شده به خاطرش نیست. درست به خاطرش نیست. شاید چیزی بوده. شاید هم نویسنده این نامه به کلی جر کرده است. اینکه مهم نیست امروز به خوبی می که در آن نامه دو سال پیش که آرامش خانوادگی او را مختل کرد چه واقع این نقل شده است دیوانوار نامه ها را زیر رو کرد با انگشتان لاغرش آنها را ورق می پوست چروک خورده روی استخانها ور می جست.